درود بر شما آقای حیدری که تعلجه زیبا تو میده که تعلجه آذربایجانه و درود با آزربایجان مهد دل ایران و آزابیگان ایران زبان آذری رو ما مدرک داریم که همیشه یکی از زبانهای خیلی خیلی خوب ایرانی بوده و شاعران و بزرگی مثل قطران و مثل خاقانی شربانی و مثل نظامی گنجوی و مثل صاحب تبریزی دارای برترین بهترین نمونه های شعر فارسی هستند که از این خطه زرخیز به گمان من مقدس بلند شدن و خب البته وقتی که این آقایونلو، غرقایونلو، ترکان سلجوقی اینا از حدود صده های به این طرف اومدن این زبان زبانه کوهستان ها و ایلهای خودشون بود و در شهرها نبود بهترین دلیلی که ما داریم اینی که یک رساله باقی مونده به نام رساله روحی انارجانی انارجان میدونید که یک آبادیش نزدیک تبریز و در این رساله روحی انرژانی که 1000 خوردی در سال 1000 خورده یعنی در قرن 11 نوشته شده سخنانی از مردم تبریز اومده مثلا فرض کنن که دو تا زن که حبوی هم هستن با هم چطوری صحبت میکنن یه مادر با دختر چطور صحبت میکنه عروس با مادر شوهر چی میگه و مادر شوهر با عروس چی میگه و حتی گفتگوی یک شخصی که جزو اوباش بوده که او رو میبرن به دادگاه برای یه چیزی می‌خواستن محاکمه بکنن بو گفتارهایی که او یعنی گفتار مردم فرودست و اون چیزی که ما امروز می‌گیم لات اونها حتی در اینجا آمده و اشعاری در اینجا آمده که این اشعار همه نشون میده که زبان شیرینی بوده در آذربایجان که یکی از زبان‌های مثل, مثل مثلا زبان کردی یا تاتی که الان حتی هست در آذربایجان رواج داشته اخیرن یک گنجینه عظیم پیدا شد که یعنی عظیمترین گنجینه فرهنگی جهان یه شخص تبریزی که الان من متصبان نامش به خاطرم نمونده تحت عنوان سفینه تبریز که در قطع دو برابر رحلی یعنی اون چیزی که قدیم میگفتن فرعونی حدود دو سه هزار سفد مسائل مختلف علمی و مسئله نجومی ریاضی تبی رو نوشته این شخص بزرگوار تبریزی که من برای جلسه آینده نامشو کتاب رو خواهم دید که نامشو خواهم گفت برای بزرگ داشته کار این مرد بزرگوار تبریزی و اینا همه فارسیست حتی در اونجایی که اشعاری به زبان مردم یعنی زبان آمیانه مردم تبریز آورده که درست یه چیزی مثل تاتی یا کردی یا خیلی شیرینه و البته آزربایجان که اذاره ها قبل ایران بوده نمیتونه فرهنگی غیر از فرهنگ ایران داشته باشه همینطور هست همه این نمودها و همه جلوه های فرهنگی ایران در آذربایجان دیده میشه خیلی خیلی روشن و تابناک منتها از تقریبا سده دهم ده یازدهم ده دیگه بعد از مولانا روحیه انارجونی کم کم میبینیم که با توجه به اینکه ولی قاجار هم اونجا بوده و اینا زبانشون ترکی بوده کم کم در شهرها هم زبان ترکی وارد شد من در این زمینه خیلی مطالعه کردم شما همه اون چیزایی که بینید که اثر فرهنگ داره در زبان آذربایجان امروز همه فارسیه یا پهلویه اون چیزایی که نشان از فرهنگ نداره اونها بز... یعنی ترکانی که وارد شدن اون ها رو با خودشون آوردن و در زبان امروز آذربایجان هست وقتی که ما یک کتاب نوشتیم یعنی چاپ کردیم زب... فرهنگ واجه های کوهن در زبان امروز آذربایجان. من با اصاد روانشا زکا تبریزی که واقعا خیلی دوستش می داشتم و مرد بسیار شریفی بود و در زمینه زبان و فرهنگ آذربایجان خیلی کار کرده کتابش موجود هست. من به ایشون گفتم که استاد به نظر من پنجا شست درصد واجه که در زبان امروز آذربایجان به کار میره باید فارسی باشه یا پهلوی باشه ایشون فرمود به من 80 درصد یعنی این حرفی است که یک دانشمند تبریزی گفت و, و این در گفتار امروز آذربایجان افعال و ضمایر و اینا همه ترکی است شکل ترکی به زبان میده و اگر اگر نگاه کنیم میبینیم که زبان یعنی بیشتر واژه‌ای که به میره زبان فارسی یا پهلوی یا حتی واژه‌ای هستش که ریشه عوستایی داره که در جاهای دیگه ایران نیست مثلا ما در همین فرهنگ واجه ها در زبان امروز آذربایجان واژه هزار رو پیدا کردیم که برای مساحت پی... میگیرن مساحت زمین در آذربایجان روستا در روستاها هنوز هست این هزار واجهیست در عوستا به ب... صورت ها باقی مونده در هیچ جا نیست نه در خراسان هست نه در فاس هست نه در کرماشان, کرماشان ه ی فقط در آذربایجان واقع بوده این نشانه ی پیوند عمیق این بخش از ایران با تاریخ و فرهنگ کهن ایران ما کار زیاد شده خب من فکر کنم دیگه بیشتر از این نمیتونم یعنی وگرنه میتونم 5 ساعت صحبت کنم در این مورد ولی نه خسته نه نه میدونم خسته نمشید غلطتون رو تازه کنید یه خورده موسیقی یه تلفن بازم هستش تلفن ها رو بشنویم سپاسگزارم ما نمیتونیم زمان زیادی بذاریم شنونده های عزیز با بابت سوالات شما چون برنامه روال خودش رو از دست میده البته سفارش آقای دکتر جنیدی همیشه این هستش که هیچ تلفن، هیچ پیامکی رو بی پاسخ نذاریم شرمنده شما این تلفون های ما 220-4485 220 58 800 220، 58 800 3558 هم شما پیامک ماست 3558 3558 Thank you. اسلام ادد دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و تولید کنندگان این برنامه خوب میخواستم خدمت دکتر جنیدی ارز کنم که وقتی که فرهیختگان ما تحکیل کردگان ما از چیزای مثل قبل از تاریخ و بندی شاهنامه به پهلوانی و حماسی و تاریخی ناممیبرند شما چهجوری انتظار دارید مردم اوامر شما را عرضه های شما رو قبول کنم من با عرض شما کاملا موافقم ولی تو همین برنامه تو شب دیگه از همچین واژگانی از همچین های استفاده میشه خیلی ممنونم علی عباسی هستم از شمال بختیاری درود بر شما و درود بر اون دیار ساسات و چهارمحال و بختیاری که من شنبه آینده در شهرکرد در اونجا دو سخنرانی خواهم داشت متاسفم که این گونه سخنان از طرف بعضی از فریختگان گفته میشه درباره شأنوم ما اصلا اسطوره نداریم اسطوره تاستون‌های دروغه که خود یونانیان بهش میگن میت, میت میت یعنی دروغ و میتولوژی یعنی دروغ شناسی اون داستان هایی که من گفتم که به خواب پریشان یک انسان دیوانه مست میاد باگنا اون داستان های دروغی که ارو... یونانیان گفتن اروپاییان و جهان غرب همه اونا رو قبول دارن و بر پایه‌ی اونها درس میدن در دانشگاه ها و متأسفانه در دانشگاه ما هم این درسو بوده باید دانشجو از اینا نمره بگیره این... به هیچ وجه شایستگی این نداره که ما شاهنامه خودمون رو که گنجینه خرد و فرهنگ نیاکانمون هست با این سخنان در حقت آلوزه بکنیم من چه کنم اگر در همین برنامه شما باز کسی بوده که در باره درباره در باره شما نام صحبت کرده باید پیام داشت بدیم که اشتباه میکنه وقتی که ما از نخستین برخ شاهنامه در میارم که بعد در گفتار پسینم هست می‌بینیم که همه اینا هوای زندگی و تاریخ ایران هست ما استده نداشتیم ما همه اینا رو به صورت تاریخ داشتیم و سرفرازیم که خواهنترین تاریخ جهان از آن نیاکان ماست و امروز هم در دست ماست موننت شما باید اینو توجه بکنید که این خیزشی که برای باز شاخته رمس شاهنامه پیش اومده بعد از هزار سال از شاهنامه تازه است. و چون تازه است هنوز به گوش همه نرسیده من با شما و با همه شنوندگان گرامی دیگری که اینها را قبول داریم با هم کوشش بکنیم که اینها به قول امروز مورد قبول واقع بشه جا بیفته در جامعه ما اون کسانی هم که از میت و استوره در باید سخن میگن خب همه نظر به گفتار قربیان دارن نظر به گفتارهای پیشین دارن همه با هم به سوی یک آینده درخشان انشال چرا کارشناسه شما هیچ اشاره ای به کردستان ندارم؟ مثل اینکه زبان عوستا در کردی، کرومانجی و به خصوص حرامی ما الان هم استفاده میشه. آقای ریبوار ریب یا ربیوار سنندچ. درود به کردستان گرامی، من در پاسخ پیشین چند برنامه زبان کردی گفتم که گفتم زبان پیشین آزرباجان، در اگر یک گونه ای از زبان های ایرانی همانند کردی خب خیلی خوشحالم که شما پیش آهنگ کردان قیور و کردان سرفراز ما هستید که به این برنامه پیوستید، در جان من برای کردستان میتفه و همه جور ایران البته ولی خب برای کردستان من خیلی رفت آمد کردم و من نخستین شخص غیر کردی بودم که به کردستان غربی یعنی عربی و سوریمانیه رفتم با همراه با گروه های کردی که از اینجا برای نخستین بار رفتم من در اونجا سخنرانی های فراغان کردم خیلی هم مورد توجه باقی شده و به کردان گفتم هشدار دادم که شما از اصیل ترین در حقیقت تیره های ایرانی هستید و من بیاد دارم که در یک جلسه ای که در اربیل داشتیم یه استاد جوان دانشگاه نقطه که من تجدیل میکردم از کردستان گفت که ما کردان یک بشت چوپان هستیم و تاریخ نداریم متاسفانه یک تاریخی هم که اگه داریم به زبان فارسی و بعد وقتی من صحبت کردم گفتم که شما ننگتون میاد که ایوان تاریخ، تاریختون به زبان شاهنامه باشه شما اگه تاریختون به زبان انگلیسی نوشته شده بود سرفاز بودید شما چرا نمیدونید که گودرز کشبات پهلوان بزرگ کردستان و نیای کردان جهان این گودرز پور کشواد، پور کارن پور کاوه آهنگر بوده من بی گمانم که درفش کاوه بارها از کنار اون با دست نشون دادم اون تپه اربیل رو بارها از پیروزمندانه از کنار این تپه عبور کرده من تقریبا 12 سات پیش که به اربیل رفتم اونجا روی اون تپه دو دوتا ساختمان اشکانی شناسایی کردن به کردان گفته وا کنید این ساختمان دوران شککنی سالم در اینجا باقی موده یعنی از ستم اردشیر باقی مود اردشیر تمام به آثار رو در ایران از بین برده ما بعد از نزدیک به 1800 سال فقط یک تقریبا تصویر در خوزستان از دوران اشکنی داریم یکی در لاخ مزار جنده یه چندتا مهر رو علامت پیدا شده در نزدیکی مرب و اخیاً در افغانستان گرامی پیدا شده همه را از منبول اما این دو ساختمان عشقانی سالم و کامل در اربیل الان هست و اونجا رو موزه کردم و اونجا وقتی گفتم که یه چیزی بود نوشته بود هیزی رون هیزی رون یعنی کوزه روغن گفتم این چیه هیچ کس در اونجا در اربیل نمیشنه من گفتم این دبه روغانه که با سریش درست میکنن و اینو حالا بعد یک وقت دیگه چون این پاسخ تولانی شد یه وقت دیگه خواهم گفت که هی زیرون که در عربیل هیچ کسی نمیدونست چطور ساخته میشه در خراسان من دارم و الان هم در گنجونهی بنیادنی شبور داریم درود من به کردستان سلام از آقای دکتر جونهیدی بپرسید فرق بین کلمه پارسی و فارسی چیست این که په کم کم قابل تبدیل به وقتی که ما در ایران پیش از اسلام بودیم گفتیم پارسی البته و همه جام که پارسی و پارسیک داریم یعنی،, یعنی پارسی و بعد کم کم که اسلام اومد اونو پینیم زنستن بگن اونا فارس گفتن فرس گفتن فارس گفتن کم کم دیگه ما هم حالا گفتیم میگیم فارسی تا واجه ها تغییر صورت میده مثلا فرض که در عوستا بوده اپ اپ, اپ. اپ. در پهلبی شده اپ در فارسی شده اپ خود پ تبدیل میشه به به همطور که پ تبدیل میشه به ف در واژه‌های های فارسی و پارسی. شما شنونده برنامه پنجره های روبه محتاب هستید و یک چند به شبها آقای دکتر فریدون جنیدی درباره شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنند. بخص قیام ایرانیان علیه حکومت بابل تموم شد درست میکنم یعنی قیام, قیام قاوه آهنگر درست فرهنگی قیام فرهنگی ایرانیان و الان سوالی شده بود اینجا از ما در هستی گذشتهی فکر می کنم من نرسیدم بگم عنی فراموش کردم ببخشید هم تو رو خداش روونهایی عزیست. خیلی پیامک شما خیلی زیاد هست. تلفن های شما خیلی زیاد هست. اما ما میخوایم که بحثی رو داشته باشیم. رااد بفرماند بعد یه زمانی هم برای تلفن های شما یه زمانی خیلی خوبیم برای شما اقص مییم با توجه به اینکه برنامه ما یک ساعت و نیم هست مع الان بودم بیست پنج دقیقه در این بخش در درباره تلفن ها و پیامک های شما حسات پاسخ گفتن. اما این سوالی که شده بود. و باز هم بر می گردید صحبتی که شما میخواستیم بفرمایید و با هم صحبت کردیم درباره کییوومرس بود و راز کی و مرس یعنی چی و این چه رازی است؟ خب ما باید بریم کم کم, کم به،, به پیش تا ببینیم که این چه رازی است ؟له در زبان پله گای و مرت تلفظ میشه و در زبان ابستایی که کوتر زبان آریوی جهان هست خوشختان ازان و ممس و از آن نکنه ماست اروپایی البته سعی میکنن که سانسکریت رو پیش بکشن اما محزبان ابستا های کوتر از آن هست در ابستا این واژه به به بس صورت گی مرد اومده در ریشه گی یعنی جان که ما بینیم در گیاه هست در جان هست که در اتفاققا در زبان کردی بهش میگن گیان و گیان در زبان پهلاوی تلفظ میشه، یعنی همون که در پهلاوی هست در کردی هنوز باقی موده و در گیاه و گسفند و گاو و گیتی و گیهان و همه اینا هست، یعنی جان مرتا یعنی میرا یعنی جان میرا یعنی دوران عظیمی که در اون دوران جان در جهان پدیدار شد و لازمه گذره جان در جهان مرگه یعنی جمادات به صورت ظاهر مرگ ندارن چون جان ندارن اما چیزی که جان داشته باشه چی گیاه باشه چه عشره باشه چی جانور باشه چه درخت باشه چه انسان باشه اینا برایشون مرگ پیش میاد مفهوم عظیم گیاه مرته یعنی پیدای جان در جهان منطقه از بس که این دور هست می‌بینیم کیومرس در دیگه در زبان ها به صورتی یک فرد تجلی میکنه. وگر نه اگر کیومرس اولین شخص بود، این اولین شخص بر کدام اشخاص پادشاهی می‌تونست بکنه. نه، این دوران است که جان پیدا میشه و لازمه ادامه جان هم مرک که هنوز هم در جهان ما هست. یعنی هنوز هم میبینیم که جان پدیدار میشه و مبدل میشه یا منجر میشه به مرک. تولد و مرگ این دوره بزرگ باشکو خیلی خیلی دراز آهنگ و بلند هست منطقه که از وقتی که ما اخباری داریم که در کتاب داستان ایران خواهم شیخفت، نخستین خبر ما از هفتاد و پنج هزار سال پیشه این البته خیلی گذافه می نماید اما خوب من نثابت کردم خواهیم دید با توجه به رویدادهای طبیعی می بینیم در شانه ما از رویدادهای طبیعی که زمین شناسی اونها رو میکنه سخن رفته نه. اینجا یک گفتار خیلی زیبا هست که کیومرث پسر بود منو را یکی خوب روی شب و روز آرام و نازش لابد شما این تصویرهای رو دیدید که از انسان خمیده که تقریبا پشتش خم هست دستش به زمین نزدیک هست این کم بلند میشه بلند میشه بعد این به صورت یک انسان خیلی زیبا یعنی انسان امروزی در میاد. نه. این رو دانشمندان امروز جهان این جدول رو درست کردم با. و توی شانام همین نفت است تسر بود مرو رو که خوب رو یعنی پس از دوران‌های بسیار دراز که تقریبا قامت بشر بلند میشه راست میشه سرش راست برشد چو سر به بلند و گفته گفتها رو خوب و خیرهت پایی بند تکامل فیزیکی انسان تکامل فیزیکی انسانه تن انسانه با. این در هیچ کتاب باستانی جهان نیست فقط در شاهنامه است بر کتاب هندوها که من خوندم هیچ از این موضوع البته هندوها خیال میکنن که اول تاریخ جهان با جمشید آغاز میشه اصلا به کیومورس توجه ندارن از جمشید آغاز میکنن در حالی جمشید خیلی دورتر از کیومورسه خیلی نزدیکتر به زمان ما هست ببینید این گفتار سرش راست بر تو سر به بلند به گفتار و خوب و خلق پای بند یعنی همون جدولی که شما میبینید نه. و در این گفتار که پسر بود من رو را یکی خوب روی شب و روز آرام و نازش بدون همونه در مرده تکرار تکرام میشه اونجا در پیش گفتار شاهنامه بود اینجا در خود داستان کیومبارسه. نه اون شگفتی خیلی عظیم اینه که همراه با سیامک سیا اسم پسر کیومرثه. سیامک در عبستوه سیامو مغه سیامو مغه یعنی قار سیا. یعنی زمانی که بشر برسر سر بروز سرماورم نقصدین پناه برده به قار خوب خب ببینید ما چه کتابی داریم. به بازی گرفتیم. مغزمون بازیچه است. نخواستیم به این نقاط درخشان تاریخ بشری که در شامنامه است. توجه کنیم. هیچ کس نکرده. متاسفم من. من... توجه کردم از این وقت خوشحالم ولی متاسفم که چرا ملت ایران زودتر بیدار نشد تا بدونه که چه گوهرهایی در خلال متون شانومه و عبیات شانومه نفته شده خب در کتاب های دیگر ایرانی یعنی کتاب های پهلوی و بعد کتاب فارسی تاریخ فارسی که از اونو ترجمه شده نیگه که سیامک یک برادر همزادی داشت یعنی دو قلو به نام فرواک این ترواکو در بعض از کتاب های تاریخی مثلا ن نمیشتن حتی افاوال نمیشتن به خیص اینکه فریدون رو عرب، آفریدون میگن فرال رو اافاوال کردن و این باز خودش یک حقیقت بسیار از این و شگفتی در خودش افته داره. برای اینکه ما این حقیقت شگفت رو از این رو بررسیم من ناچارم یه پیشگفتار بگم پیشگفتار گفتار این که یک ریشههایی هست در زبان عوستایی که اون با پیشوندهای های مفهوم تازه پیدا میکنن مثلا فرض کنید که هیختن یعنی بیرون کشیدن و این هیختن با پیشوند آ تقویت میشه میشه آهیختن میبینی که شما آهیختن هم همون مفهوم هیختن داره و این آهیختن در زمان حال یعنی زبان روان میشه آهنجیدن این آهنجیدن میشه آهنگ و و آهنگ میشه ولی این با یه پیشوند دیگه به نام فر حرکت پیش پیدا میکنه فر پیشوندیه که حرکت به آینده رو نشون میده مثلا در واژه فرجام میبینید یعنی حرکت رو داره نشون میده که در پایان چه خواهد شد یا در واژه فر تاک پهلوی یعنی فردا فرسی ما الان میگیم فردا نادرسته باید میگیم فردا تاک یعنی روز به زبان آلمانی روز تاک یعنی روز که در انگلیسی شده دی همون که در ترکیب روزهای هفته در فانسی شده دی مثل سامدی مررگین ها دی شده این یعنی روز زشی یه دی ابایی و دیوستی یا در عوستا و حتی در سانسکریت یعنی روشنایی خب فر یعنی حرکت به صورت روشنایی آینده چون فردا اون چیزی است که روشنایی است که در آهنده میاد خب این فر خودش رو در فردا نشون داد و در واژه فرهنگ نشون داد فرهیستان فرهنگ در واجه فرجام خودتون نشون داد که الان ما میگیم فرجام ببین این پیشوندها هر کدوم به نوبه خودش یک معنی براش درست میکنه مثلا فرض کنیم که چی یعنی اقامت نیچی نی حرکت به طرف پایین نشون میده مثل نیشتن نیوفتن مثل نیهادن ببین همه این نی ها در حقیقت پیشوندی بوده که با شی همراه شده با نیوفتن انجام به طرف پایین داره اشاره میکنه چون نشستان یعنی به طرف پایین نشستن نیوفتن یعنی چیز رو پایین پنال کردن میادن یعنی چیزی رو از بالا و پایین گذاشتن این پیشوند هست که در زبان فارسی امروز وارد خودکنش شده ولی در زبان اوستایی به صورت مجزا کاربرد داشته به طور که امروز از هر کدوم از این استادان ادبیات بپرسین نشه ریشه چیه میگن نشاست مثلا اما نه ریشه شیه در عوستا شی بوده که در واجی شی داریم مثلا در واجی حوشنگینا داریم که بعدن خواهم شکافت ولی ها فیلن در کیا هستیم مفروض من این که این پیشبند واجی رواک حرکت به سوی آهندر نشون میده خود واک در فارسی تبدیل به واز در آواز در پهلوید به واچ تبدیل شده که در واجه واچک داریم به فارسی واچک تبدیل شد به واژه به جه تبدیل شد خب این واجه در زبان انگلیسی تبدیل شد به ویس در پتواز و آواز و همه اینا هست ما داریم اینا همه از ریشه عدستایی وچ گرفته شد یعنی گفتار خب فر واچ یا فر واک یعنی چی؟ حرکت به سوی گفتار یعنی دورانی که بشر اثر سرما پناه برد غارسی ها همزادش گفتار پدید اومد. و گفت این با علمی ترین سخن جهان درباره گفتار که با پیشوند فره آغاز میشه. یعنی گفتار اول صدای باد بود صدای آب بود صدای جانورران بود کم کم کم کم حرکت کرد جلو جلو به این صورت در اومد که امروز ما داریم. این فقط افتخار ماست درسته که نام فراباک در شانام نایمده ولی در اون شعری که من خوندم میبینیم مفهوم فرواک است. سرش راست و شد چو سر به بلند و گفتار و خوب و خرد پایند. یعنی اون خوب روی که قد بلند پیدا کرد که انسان امروزی هست کم کم سخن را هم آغاز کرد و با سخن هست و با گفتار هست که خرد پدید میاد شما بدونید اگر جامعه بشری گفتار را علم از اون پیدا نمیشود گفتار سر مایه اندیشه هست حتی یعنی افرادی که یعنی جونی که فقط خور و خش خشم میخونه خب اینا دیگه خردی ندارن که اینا همون زندگی طبیعی خودشون انجام میدن ما با گفتار هست و با همین ها است که اندیشه همدیگر رو برمیانگیزیم من یک سخن میگم در اندیشه شما یک مفهوم پیدا میشه شما پاسخ میدید در رجی من یک مفهوم پیدا میشه مقصود من اینه که گفتار پیشگام اندیشه و منیتار بوده. یعنی اندیشه با این گسترشی که در بشر پیدا شده سر مایش از گفتاره. و گفتارم اینه که کم کم به مرور پیدا شد. نه در یک زمان. این راز بزرگ شاهنامه ماست که در هیچ کتاب فرهنگی جهان ما نظیرش و نمونش رو نمیبینیم. البته حدس میزنن که ممکنه که بله گفتار با صدای, جا تقلید صدای جانوران یا آواز و بازه اما این که خودم واجه است این واجه داره داستان عظیم بلند پیداهش سخن رو در جامعه بشری همراه با نخستین سرمایه که روخ داد که زمینشناسان امروز زمان اون رو پیدا کردن هفتاد و سال پیش ورمه یک همراهه حالا کسانی که میخوان سر باجون و بگن که نه اینها نیست بگن مهم نیست ولی من اینا رو برای جوانان بیدار دل ایرانی میگم تا بدونن که شاهنامه اونا چیست تا بدونن که این میراس گران و یه بزرگ فرهنگی چیست که به دستشون رسیده تا قدر اون رو بدونن و با شاهنامه نیک بزیند سفاس خوزارم دکتر جنیدی فکرم در مورد کیومه خیلی کامل و خوب صحبتی از بحث باقیمونه گفتگو با باقی زمان اندکی داریم پیامک زیادی اومده تلفن‌های های زیادی شده اگر اجازه بدید پخش کنیم و صحبت کنیم در مورد اونا شما شنونده برنامه پنجر های روی محتاب هستید و آقای دکتر فریدون جنیدی درباره شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنند. شما تلفن‌های ما 222-400-825 ۲ست پنج و شماره هشتصد و پیامک ما ۳ هست سی ه میام تلفن پنجاه <ها> ه شوندم می تلفن رو میام خود شما میخوان پیامک که تلفن ها رو بگم من و شما صحبت بفرمایید. خدمتون هست هم میشنیم صدای شما رو. هم در امروز برفش کابیان سببت کنن در از برنامه خوبتون کابیان هستم از اسفان از گفتار شما معلوم میشه که دانش آموز هستی و توجه شما رو به این برنامه سنگین سپاس میگم من در پ درفش خودیان یه مقدار صحبت کردم و بش رو واگذار کردم به برنامه های آینده که تا اینکه بیشتر این رو گفتم منتظر باشید بیاری از دا. ام، پیامکی داریم ما اینجا که حالا بازم تو همین زمینه هستش و چقدر مشتاق هستند و خیلی ممنونیم از شما شوندگان عزیز که با این پیامک هایی که برای ما میفرستید و سوالات متعددی که دارید ما شرمنده میشیم که نمیتونیم همه رو کاسخ بدیم و حالا ان به اندازه میتونیم به اندازه‌ای که حالا با توجه به برنامه باشه خدمتتون عرض کنیم. ام ام ام ام ام اینجا پیامک داریم مو حالات یه پیامک بود من خیلی جالب بود برام اینو میخواستم موسیقی بشن می این پیامک رو پیدا کنم موسیقی بشن می پیامک رو پیدا کنم. <موسیقی> بخونید. بله چشم. می‌کردم. موت بود. باز نه. خب ممنون. ببخشید. سلام. شب آرام من دختر ایران و دانشجوی مدیریت هستم و علاقمند به ادبیات اما نمیدونم شاهنامه رو چطور شروع کنم بخواندن کمک کنید راهنمایی بفرمایید. دختر ایران درود بر شما من سی سال به شما کمک کردم شاهنامه رو ویرایش کردم اگر شاهنامه من رو ویرایش منو بخونید به شما دست شما رو میگیره و اون ابیات افسوزه اینادرش نیست و شما به خوبی میتونید شاهنامه بخونید من باور کنید که در 27 سالی که شاهنامه خانی در بنیادینش عبور داریم شاید از دو هزار جوان ایرانی یک گونه سخنش داوریش نیتم ما رفتیم شاهنامه گرفتیم با تقدس بوسیدیم با احترام آوردیم خونه دی نمیتونیم ازش چیزی بخوایم گذاشتیم کنار به اللتش اببیات افزود است که تابقا همون در همون بخش اول آفریننش خیلی از این ابات افزوده است. من به شما اقرار کنم که در سال ۱۷۵۸ وقتی که کتاب زندگی و ماجات آریویانندشته بودم خب بخواستم اینو چاپ بکنم من تا اون زمان جرات نکرده بودم که همین بخش اول شنا بخونم. از بس که بیات افزودده و متداخل داره و در حقیقت مفاهیم گوونهگوون و رو در رو. بلا من گفتم که تو میخوای کتاب زندگی مهاجرت رو چاپ کنی نا چهار بار بخونی به ستم و به زور این رو خوندم روان نیوکام به من یاری کرد فقط اون چیز ابیاتی رو که انتخاب کردم در پیشگفتاره زندگی و مهاجرت آریا آوردم اونا همه ابیات خود فردوسیه بله من میدونم که خوندن شاهنامه با این ابیات افسوز مشکله اما من که کار شما رو آسون کردم و شما زمینا میتونید به بنیاد نژوبون مراجعه کنید روزهای شنبه ساعت پنج تا شیشی بعد از ظهر ما آین پرشخوه شاهنام خانیر داریم. بناید نشابورم خانه فردوسیس متعلق به همه فرزندان ایرانه. ببخشیم. من حواستم داشتم پیامک کنم. باید دکتر شده کنم. نشدم. خب حالا تلفونها رو میشتم شما ببخشیم من. حت فارسی که از ما استفاده میکنیم از چه زمانی شروع شده استفاده میکنن و اینکه از عربی به فارسی اومده یا از فارسی به عربی من طالزه هستم از تهران تماس میگیرم متشکرم خدا خط فارسی از خط پهلوی گرفته شده و همطور که مادر زبان فارسی زبان پهلوی همطور خط هم از اون گرفته شده شما یه خودری که اگه مطالب کنید یا اینکه من کتاب نام پهلوانی رو که نوشتم خودم آموز خط خط زبان پهلوی هست می بینید که این خط از خط پهلوی گرفته شده نه از هیچ جای دیگه ابن مغفق که نام پیشینش روز به فارسی بوده در یکی گفتاری داره که ابن ندین در کتاب گرامی الفهرست اونا را ورده و میگه که ایرانیان هفت گونه خرد داشتن و البته امروز اروپاییان برای ما ساختن که ایران در ایران مدرسه نبوده در ایران آموزش نبوده و عبستارم که میخوندن از بر میخونن و ما مدرسه و خود هم که پیرو اروپاییان هستن در اینجا این شبه استادانی که ما داریم همه همین حرفا رو گفتن ولی من میپرسم از خردمندان من خیرمند اون مادر بزرگی پیریه که تو روستا ایران نجسته ای مادر بزرگی پیر آیا ممکن هست که یک مردومی حرفو گونه باشن و اینا مدرسه نراشه باشن و اینو خطشون از کسی دیگه گرفته باشن اینا همه بابت عبرت روزگاره نه ما خط داشتیم و خطمونم سلسله‌اش پیداست از خط پهلوی اوستوری به بعدش شده فارسی با درود استادان دانشگاه از جوابهایی که به انتقاد کنندگان شاهنامه داده راضی نیستند راجع به این موضوع چندی شده اید؟ باید دونست که این استادان دانشگاه کدام استادان هستند پشت پربه نمیشه سخن گفت من سخنان خودم رو آزاد میگم و چی داییرم که میگم البته تا هیچ کس تا با حالا مترجع نشده و من سرفرازم به اینکه به عنوان یک فرزند ایران تونستم رمز با رازها رو بگووشند. بله کسانی که تا بهال همه بدون دنبال افکار غربی بودند و شاهنامه ما هم از دیدگاه غربی تفسیر میکردن بله اونا باید روزی نباشن من مهم اینه که این رو برای خوشنودی روان نیاک کردم و برای فرزندان ایران فرزندان ایران آینده درخش شاهنامه رو به دست بگیرن حرکت بکنن بگذار که بعضی از این استادانی که مفهوم آناره رو نمیفهمند روزی نباشند. با سلام آقای دکتر شنبه آینده در کجای شهر خردخندانی دارید و دعوت شدید شنبه آینده دو سخنرانی دارم یکی به وزارت ارشاد و حوزه هنری و دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور با هم در گویو در سالن وزارت ارشاد هست که قبل از ظهر اونجا سخنرانی یکی یکم دانشگاه دولتی است که در سالن شهید آوینی بعد از غروب اون وقتا دوستو سخانوری در یک روز دارم که تشریف بیارین من شبوام میشم شبو بگیرم. نمود شمعه آیندام بفرمایید چه روزی هست؟ در مورد اینا مثلا ش... ما تو برنامه در خدمتتون هستیم که شنبه. یک چمبه یک چمبه میام بله بل. این که سوال بکنم ما میو برویم. شمعه آینده شمعه آینده پ... 25 ام من در شهر کرد خواهم بود دو جو همو عرض کردم دیگه. بله مناسبت خاصی نیست شو شوانا می فردوسی بزرگداشت هر دو جا با هم رقابت کردم. و من از دانشگاه یا خواستم که شما هم شرکت کنیم گفتن ما تعداد بوند. دانشگاه خیلی زیادن و شیفته هستن و میخوان که در بارش آنامه ما خود بوند. اگر بخوام در اون مجلس شرکت کنیم جانید به اون اندازه بنابراین من موافقت کردم که در یک روز دو سخنرانی به یاری از دان اگر در یک روز پنج دو سخنانیم باشه من اون نیرو رو دارم یعنی هم نیرو میگیرم از روان نیاکان فردوسی و هم نیرو میگیرم از اون چشمان و مشتاقی که دارن به این سخنان در شاهنامه گوش میدم با سلام و درود دکتر میخواستم ازشون خواهش کنم که این برنامه شهنامه خانه رو از اول بر ما یک برنامه ای رو بذارن که ما یاد بگیریم من از هستم از تهران سلام از میکنم خدمت همه در سهم راژیو فرهنگ خصوصا دکتر جونه ایدی میخواستم محبت کنید از آقای دکتر این سال بپرد که در خصوص داستان اکوان دیو چرا در واقع در شاهنامه به اندیشه بعد شخصیت داده شده یعنی به شکل شخصیت اکوان دیو داستان در واقع تحریزی شده و به این اندیشه بعد شخصیت بخشیده فردوسی در خصوص مثلا دیوای دیگه مثل دیو سپید ما میبینیم که کاملاً این تنوعیت وجود واقعی داره در خصوص کوه ولی در خصوص این اقمان دیف این رو اگر معبث بکوید از آقای دکتر بپرسید که چرا به این انیشه بعد شخصیت دادن خیلی ممنونم مچکه در اون پرسش آزیتای عزیز این که شان رو از اول بخونیم این در اختیار من نیست دیگه خود رادیو فرهنگ باید برنامه گذاشتش من منطقه جانم آماده است برای نصار به در راه فرزندان ایران و اما همطور که در پرسش دوم خب اندیشه بد رو من ارز کردم که ایرانیان بعد تورانیان پیروز شدن و شاد کمی و ام و بیخبری جان اینا رو فراهم فرا گرفته بود و از هیچ سو دشمن نبود و اینا کم کم گراش پیدا کرد به جریانی که اندیشه بد برای هوک حکفرما بشه حالا اکوان که من شکافتم یعنی اکومن یعنی اندیشه بدی که این در اون تدری نیست خب وقتی که داستان پدید میاد باید که یک نمودی براش پیدا بشه این رو همین ایروز هم می‌بینیم که در این نوشدار های اروپاییان هم حسمثل یک بخش سبولیک که خب این چیز سمبولیکی درست میکنن دیگه بر, بر, بر یک نماد پیدا بکنه برای اینکه بچه ها می خون به ببتند کردیم بعد مثل همون گوره که بسیار زیباست بسیار دلپذیر حیفت ما اونو بگیریم بکشیم اون بهترین که خودمون داشته باشیم نمیدونیم که اگر اندیشه بعد از آن ما باشه یعنی خودمون بد میشیم یعنی سر به هوا میشه مثل رستم که سر به هوا شد و مثل اینکه در اون بالا یه فهمید که باید با اندیشه پر مبارزه کنه و گفت منو بنداز رو کوه رو تاش اندازی میبینید این نماد پیدا میشه این نماد که امروز بهش میگن سمبول اینه که اندیجی بگه نه بعد رو چطور میتونیم تجسس بکنیم از این زیباتر نمیشد تجسس بشه شاد باشید پیوز باشید سلام و درود این برنامه و صحبت های دکتر جنیدی آنقدر حقیقی است که ماتش نگان فرهنگ و تاریخ کوهن کشور کشورمون فقط تصدیق گویان به این سخن به این سخنان گوش،, گوش جان می سپاریم در مورد موسیقی شاهنامه می توضیحات بدهید با سپاس سکار خانم زهرا طالبی از عراق درود بر شما من یک کتابی نوشتم به نام زمینه شناخت موسیقی ایرانی و در این باره من در باره همه مسائل فرهنگ موسیقی ایران در اون کتاب یادآور شدم پیشنهادم به شما اینی که شما اون کتاب رو بخونید اما اگر درباره موسیقی گفتاره شما می بینید که این گفتاری که انتخاب شده به وسیله دقیقی روانشاد که بعدا فردوسی همون رو پذیرفته همون بود گوهند را راهبر که شاهی نشانید بر, بر اگر چه نگفته از جز اندکی سر وزنوزر است از هزاران یکی همون بود گوهند را راهبر که شاهی نشانید برگاهبر که پیوند را راه دادند این وزن رو دقیقی انتخاب کرده مون تا این انتخابش سخن خود دقیقی بسیار در سطح بالا در آسمان بلند بالا نیست اما انتخابش درست بوده. خب اگر درباره این می که برنگیدنده یه جان و روان و تن انسان هاست هم در میدان جنگ مردمان رو آماده میکنه برای جان فشانی در ایران درباره ایران و هم در میدان خرد و فرهنگ از این زیباتر وزنی و آهنگی پیدا نمیشه. موسیقی بهتر نوایی خوشتر از آهنگ شاهنامه نیست که فردوسی ما با اون سرگزشت نیاکان خردمندون رو سروده سپاس خوزارم آقای دکتر جانایدی خیلی لطف کردید از این که کردید امشب هفته آینده باز در خدمت شما خواهیم بود زمان برنامه تمام شده ممنون از پرامک های زیاد شما خیلی پیامک اومده همه در مورد اقوام صحبت کردن پوستن ریشه, ها. ریشه های ما اقوام ما در شاهنامه های اشارهی شده به این در مورد زبان صحبت کردن من این تون در مورد شهرها صحبت کردن اقوام صحبت کردن و یک پیامک بود که من این رو میخونم آقای دکتر, آقای دکتر. آقای دکتر جنیدی کجایی و از چه قومی هستند؟ آقای جهان بخش جهانگیری از اهواز خیلی کوتاه کتاه من ایرانی هستم. پدر نیای من پدر بزرگ من از قنط دهاریان خراسان بوده مادر بزرگم از توس پدر من در توس به دنیا آمده مادر من دامغانی بوده و اینها با هم پیوستند و من در برفراز کوهر ایوند نیشابور به دنیا اومدم یعنی در نیشابور به جهان اومدم اما ایرانی هستم پیوند دارم با همه مرزهای ایران چه در مرز امروز ایران چه در آفاق مرزهای ایران فرهنگی مثل افغانستان, تاجیکستان و مربو. سمغند بخارو و کردستان خدا قوت خسته نباشید دست شما مانده نباشید یا <تصفح> نمرمو کم نکنید <تصفح> از شما خدا رفتتون کنه دست شما درد نکنه شاک باشید من با دست نمیم <تصفح> دوانتون قسمه نباشید از شما ممنونم همکارانه خوب من در این برنامه که الان اسامی رو متاسفانه ندارم آقای هیدایی رو من دارم می‌بینم خانم دلبری هستن خانم ریزایی و همکاران دیگهی که فعالانه زحمت کشیدنی کار گروهی خدمتون تقریم شد انشاءالله موفق باشید شب شما خوش سلامت باشید